بسم الله الرحمن الرحیم المطلب الثالث مطلب ثوم المانع مانع هست یعنی بعد از شرط و روکن و سبب رسیدیم به چه؟ البته ما آنچه که از احکامات وضعی بودن شرط بود و سبب بود و الان چه؟ مان رو توضیح بده بگه که آلمانی او شماره 34 هو امارتبه شاره علی وجودی عدم وجود الحکم او عدم السبب ای بطلانی و هو نوعان مانع اون للحکم و مانع للسبب بفرماید مانع آن است که شاره بر وجودش عدم وجود حکم رو مرتب کرده یا بر وجودش عدم وجود سبب رو یا سبب رو یا حکم رو دقت داشته باشید معنی آن از که شارع بر وجودش عدم وجود حکم رو یا عدم وجود چی رو سبب رو. مترتب کرده یا مرتب کرده منظور از عدم وجود حکم یا عدم سبب همون بطلانشه همون چیش هست؟ پس با توجه به تعریف و هو آن این مانع بر چند نوعه؟ دو نوعه. بر دو نوعه یک مانه اون للحکمی مانع حکم دو مانه اون سبب مانه سبب آقا این مانع یا مانع سبب میشه در سبب مشکل سازی میکنه در نتیجه حکم دیگه به وجود نمیاد آقا سبب باشه تا مسبب باشه دیگه موقعی که این اومد در خود سبب مشکلاتی رو به وجود آورد قطعا منجرمه مسبب نمیشه که حکمه یا نه خود حکم، و سبب سر جاش هست ولی حکم به وجود با مثال واضح بگرده الاول یعنی زمانی که مانع چی بشه معانه خود حکم سبب هست اما مانع چی بشه حکم بشه پس الاول نوع اولش و ما يترتب على وجوده عدم وجود الحكم برغم من وجود سببه المستوفي لشروطه کل اوبوت من القصص اولی یعنی اون نوعی که معانه چی بود خود حکم بود بيگه اونی هست که مترتب میشه بر وجودش یعنی بر وجود مانع عدم وجود حکم نوع اول اونی هست که مترتب میشه بر وجود مانه عدم وجود حکم با وجود موجود بودن سبب با تمام شرایطش با وجود که سبب با تمام شرایطش موجوده ولی ببینیم که حکم پیش نبیاد اجرا نمیشه حکم باطله کالعبوتی المانیاتی من القصص مانند پدر بودن که مانه از قصص بشه آقا اصل بر این است که اگر انسانی قتلی انجام داد باید قصص شود قتل البته قتل عمدی ها حکم عمومی بر این است که اگر کسی آمد قتل عمدی انجام داد قصص بشه کشته بشه ولی ما استثناء داریم اون پدر است، اون چه هست؟ یعنی آقا اگر پدر اومد پسرش رو کشت قصاص نمی شود پس باوجود این که سبب قصاص فراه هست که همون قتل عمدیست اما حکم اجرا نمیشه، قصاص نمیشه. شه چه چیزی مانع هست؟ پدر بودن پس مانه رو این معنی از حکم شد این نوع اول مانع اسیه مانع اس قصاص بشه در حال که سببش با تمام شرایق موجوده که همون قتل عمده مالی. الثانی اما نوع دوظوم و هو الَّذی يؤثر فی السبب بحیث يبطل عمله و يحول دون اقتزائه للمسبب نوع دوظوم یعنی مانع نوع دوظوم اون معنی هست که در حکم نه بلکه در خود سبب چی میشه تأثیر میگذاره در خود سبب مشکلاتی بوجود میاره خب سبب که دیگه درش مشکل پیش اومد مسبب که دیگه نبیاد حکم نبیاد شما دقیق کنید نوع دومونی هست که تأثیر در سبب میگذاره به ای که عمل اون سببه رو باطل میکند و حائل میشه از این که اون سبب بیاد اقتضای مسبب رو بکنه. دیگه در سبب مشکلی بوجود میاره که اقتضای مسبب نمیکنه. ما چه؟ چی؟ ول مثال مثال این نوع دوون که در خود سبب تأثیر بگذاره اینه. مثال آدین والمنقص لنسابی فی باب الزکات فی باب الزکات. فالنسابو سبب لوجوب الزکاتی. لان ملکیت النساب مظنّة الغنا والغني قادر على عون المحتاجين ولكن الدين يعارض هذا المعنى الملحوظ في سبب الزكاة وهو الغنى ويهدمه وبالتالي لا يكون النصاب سببا مفضيا إلى مسببه وهو وجوب الزكاة. مال؟ بسالش بيجي دين هست ديني كنسب كم بيكون؟ درباب الزكاة بفارمات كنسب سبب وجوب واجب شدن نساب. زکات است آنچه که سبب بشه تا زکات واجب بشه چیه؟ نصابه نساب. آقا مال شما به فلان مرحله برسه که تا زکات بر شما چی بشه؟ نسابه. واجب بشه پس نصاب سبب واجب شدن زکات است خب بمیگیدیم یک معنی بیاد خود سببه رو دوچار عب بکنه دوچار مشکل بکنه درش تأثیر میگذاره مثل این مثالی که زد دین پس نوع اول خود حکمو با وجود این که سبب فراهم بود در مسبب اومد یا در حکم میومد چه کار میکرد تأثیری گذاشت نوع دوم در سبب آقا سبب واجب شدن زکات نصاب است دین که بیاید سبب و؟ باله، نسابو کمتر میکنه. شما از 20 مسقال باید زکات بدهید به 20 مسقال که رسید بگیم به حساب رسیده ولی اگر جایی دیگر سه مسقال یا چار مسقال یا کمتر یا بیشتر بدهکار بودید اینجا نسابو به هم بیسره این دین میاد نسابو چکار میکنه؟ <تصفيق> یعنی اگر شما 20 تا داشتید و دوتای دیگر بدهکار بودید گویی که چند تا دارید تا. اگر ستا به دهکار بودید گویی که 17 تا لیزه اومد در چی تاثیر گذاشت اینجا این مانه در سبب که نصاب بالی بگی زیرا ملکیت نصاب کسی که مالک نصاب هست مزنه این هست که پس انسان سرطمندیه کسی که نصاب داشت مزنه و جای اینه که این آقا چه کاره هست ده و من هم توانایی دارد که انسان های محتاج چکار کنه مم. کمک بکنه اما دین در تعارض با این معنا چطوری؟ دین به ما میگه که آغا، این آقا غنی نیست هنوز در اون تعریف غنی وارد نشده پس اینجا این معانه اومد سبب از بین برد سبب رو که نساب بود چه کارش کرد؟ باله به بودن شخص اومد اون نساب چیکار چه کار کرد؟ درش تاثیر گذاشت پس این از نوع دوفبش بود در نتیجه اینجا نصاب سببی برای مسبب که همون واجب شدن زکات نمیشه سبب بنجربه مسبب چرا؟ چونه یه چیز اومد مانه اومد در سبب مشکل سازی کرد دوچار مشکلش کرد درش تأثیر گذاشت مثالی دیگر و مثله ایضا قتل الوارث مورسه فهو معنی عنی مثال دیگر آقا دقت داشته باش کشتن وارث موارثش در شریعت اونایی که افرادی که از هم دیگر عرس میبرند مشخص هستند کسی اومد از اون شخصی که ازش ارث میبره اونو کشت اگر موارث به مرگ طبیعی ببیره که ازش ارث میبره مثلا برادر از برادر به عنوان مثال ارث میبره حالا اگر اومد برادر برادرشو کشت اینجا دیگه عرص نمیبه چرا؟ بگیم قتل مانع ارث بردنه و برادر بودن سبب ارث بردنه ما سی تا سبب داریم برای ارث بردنه یکی نسب یکی ولا یکی نکاح برادر الراز نسبی از برادرش چی میبره؟ ارس. ارس. ارس. پس سبب فراهمه ولی شخص اومده چیکارش کرده کشته دور رو کشته اونی رو که ازش ارس میبره کشته پس اینجا قتل مانه از چی از ارس بردنش میشه. این یک مثال و مثل هو ایزن و مثال دیگر اختلاف دین او دار. اختلاف دین ما اسما فراهمه آن برادرشه این برادره زید و بکر با هم برادرن سبب فراهب نسب ارلاحظر... با... از از راه نسبی دو تا از چه میبرن ولی بانه وجود داره اون چیه اختلاف دینه همانطور که ما سه تا سبب داشتیم برای ارث بردن سه تا بانه داریم یکی قتل یکی اختلاف دینه و یکی بردگیه و یکی دیگر چیه یکی اگر پسر برده بود یا پدر از همدیگر ارث ارثش شما بود مال سیدش مالش خب کاری نداریم در هر صورت شما اینجا دقت داشته باشید فعلا بحث رو اینه که با وجود فراهم بودن سبب اگر دین فرق داشت از همدیگر ارث بگیم اینجا مانع وجود داره همون چیه؟ اختلاف دینه اختلاف یا اختلاف دار البته اختلاف دار یک مانع متفق علیه هی نیست داشته باشید ما سه تا داریم که از هم دیگه ارس نمی قتل بردگی و اختلاف دین این سه تا چی هست؟ معنید که تمام علمان روشون اتفاق دارن. ولی این اختلاف دار اختلافی هست که اگر دارشون با دیگر مختلف بود دو فر. ها بله یعنی یکی در دار الاسلام زندگی میکنه در حکومت اسلامی یکی در دار کفر یکی در دار چارچور به اسلام بله حکومت اسلامی داریم و غیره یکی توی مثلا جای زندگی میکنه که حکومتش اسلامه و یکی دیگر در جایی که حکومتش مال اسلام اختلاف دار بگن این تا با هم چه دارن بله. الجار و ثمت دار دیگه دار به انمانیشو بفهمید خوب دار همون خونه هست به اصطلاح بزرگتر و معنا اسطلاحیش دار الحرب داریم و دار اسلام داریم آ بله اگر اختلاف دار داشتند یعنی یکی در حکومت اسلامی بود و دیگری در غیرش آ این میتونه از هم دیگه ارث نبرن این یک مسئله اختلافی است جمهور میگن نه اختلاف دار بانه از ارث بردن نیست ولی احناف میگن اختلاف دار بانه از ارث بردن میشه اون هم البته برای مسلمان میگن نه برای غیر مسلمان یعنی اگر دو تا برادر بودند یکی دارشون با هم دیگه فرق داشت اون موقع همدیگر هم دیگه ارز نمیبرند خب این بحثیت کارایی نداره و ما کاری هم بش ندارید سه تا هستند آقا. اختلاف دین قتل و بردک. <تصفيق> متواجد شدید؟ فکلومن هما معنیون لسبب هر یکی از این دوتا یعنی اختلاف دین یا دار البته گفتیم که دار دیگه اختلافیه جمهور فقها اختلاف دار و معنی ارز نمی دانند هر یکی از اینا معنی است برای سبب معنی برای چه است؟ با وجودی که سبب فراهمه ولی این معنی بیاد؟ و سبب میشه بله خب موفق و